بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و آله و صحبه اجمعین اما بعد هفتم من درس هست از درس های سوره یوسف آیه شنزه هم فرمودی الله و جاؤ اباهم عشاء یبکون شب هنگام آمدن نزد پدرشون گریه کنان چرا شب هنگام آمدن نزد پدرشون برای گری کردن برادرشون در چاه انداختن سپس شب اومدن شب اومدن تا گریه هاشون رو پنهان بکنن تا از چهرهشون اون دروغشون نمایان نشه دروغ دو از چهرهش مشخص میشه نخواستن چشمشون تو چشم پدرشون بیفته و آشکار بشه دروغشون نخواستن پدرشون ببینه اون چهرهشون اون موقعی که دروغ میگن شرم کردن از پدرشون از اینکه بیان رو روز روشن دروغ بگن شب هنگام رو انتخاب کردن برای اصخایی کردن و برای اومدن نزد پدرشون که این خبر و این ماجرا رو بهش بازگو کنن و جا او اباغم عشاء انیب کن با گریه اومدن گریه کنان اومدن یک گریه تسنوعی یک گریه دروغین قاعده هست مصری ها عنوان یک ذرون مسئله استفاده میکنند یقتل القتیل و یحضر جنا قاتل میکشه و در جنازه هم شرکت میکنه در جنازه مقتول برای اینکه اثر جرم رو از بین ببره که بگه اگر من قاتل بودم که سر جنازش نمیومدم اینجا هم میخوان بگن که اگر ما قاتل بودیم یا ما برادرمون رو مثلا به دست خودمون کشته باشیم که گریه نمیکردیم ما داریم گریه می کنیم گریه ما نشانه پشیمانی ما حسرت ما است بر برادرمون ما برادرمون رو دوست داشتیم میگه میشه کسی برادرش رو دوست داشته باشه و براش رو گریه بکنه؟ نه گریه دلالت بر مظلمیته این مسئله خیلی مهمی هست که معمولا باید قاضیان بهش توجه بکنن اون کسانی که میخوان داوری بکنن بین چه زن و شوهری بین چه دو خواهر و برادری یا برادران هر قاضی باید زیرک باشه هیچ وقت گریه مدرک نیست دلیل نیست ولی اینها به عنوان یک دلیل استفاده کردن. خصوصا در دعوای خانوادگی هیچ وقت گریه نمیشه دلیلی باشه نباید انسان احساساتی باشه عاطفی باشه الله بهمون عقل داده خرد داده بچه هست میاد نزد ما گریه میکنه و برادرم کتاکم زده فلان ما احساساتی میشیم بلند میشیم یک سیریم زمین زیر گوش اون برادر بزرگترش که دعواش کرده حق واقعیه حق با اون برادر بزرگتر است اون برادر کوچکتر اشتباه کرده که کتاخ خورده یا تنبیهش کرده اون برادر بزرگتره اینجا هست که ما باید بر احساسات و خودمون غالب باشیم. میتونیم کنترل بکنیم. اینکه ما عاطفی باشیم، احساساتی باشیم و بخوایم حمایت کورکورانه بکنیم از بچه‌مون، اشتباهه. خصوصا دعوه هایی که بین در همسایه میشه. بچه‌ی ما خطا کرده، رفته آزار و اذیت کرده بچه همسایه رو، بعد میاد گریه میکنه آه بچه همسایه فلان کرده. ما میریم کل محله رو با آشوب می‌کشیم و دعوا به پا در صورت از کی بوده از بچه خودمون این عاطفه کوره این عاطفه کوره نباید گریه برای ما مدرکی باشه دلیلی باشه. چشم از گرری بپوششون وقتی که میخوای قضاوت بکنی. گریه دلیل نیست این ابزار بچگانه هست. این ابزار بچه حیله بچگانه هست. این حیله برادران یوسف حیله بچگانه. مثل یک بچه آدمای بزرگ خوددم برادرش تو چرا انداختن دارن گریه هم میکنن. حیله بچگانه هست. اهل مکر نیرنگن بنی اسرائیل و همچنان هم هستن و کسانی هم همچون بنی اسرائیل نرنگ صفات از یه طرفی درس من شما صادق باشید دروغگو نباشید خود رو مظلومیت نزنید اشتباه کردید بگی اشتباه کردم هتبا. خود رو مظلومیت نزنید صادق باشید عدم صدق در رفتار و کردار شغله کیه بنی اسرائیل و کسانی که مشابه اونها هستند بنی اسرائیل نباشید اونها آدمای بدی بودن. در این نوع تعاملشو در این رو رفتارشون این از باب نکویش اینجا داره الله یاد میکنه چقدر زشته بچگانه آدم بیاد جرمی رو مرتکب بشه بعد گریه هم بکنه که آه گریه من دلیلی باشه بر براءت من قالوا یا ابانا اینا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عندما تاعنا فاکله ذئب بهانه و عذری بدتر از گناه گناهی مرتکب شدن اومدن براش دروغ هم بتراشن مگه اونجا نگفتن ان الله لمن النصحین نگفتن که ما للحافظون ما حفزش میکنیم مراقبت ازش میکنیم ما دوستش داریم میگه نگفتن ادعا نکردن مگر نگفتن ما مراقبت ازش میکنیم پس چرا اینجا اومدن از باب جدل بحث نمیخوان از خودشون سر نخی بذارن. ما یوسف رو گذاشتیم که موازب ووسایمون باشه مراقب ووساییلمون باشه. شما به بدرتون گفتید که یوسف را بده با ما ما مواظبش باشیم ما مراقبش باشیم بعد اونجا رفتید ویش کردید که اون موازه وصالتون باشه اولین این دروغ یا اینجا دروغ گفتن که موازه نبودن یا اونجا دروغ گفتن که ما موازه میشیم موازه بش نشودن قالوا یا ابانا ان ذهبنا نستبق ما رفتیم اونجا مسابقه شما اونجا میگن نگفتید ما یوسف رو میبریم برای بازی یوسف بازی میکنه يلعب یوسف رو بده بابا که کی هم بازی بکنه هوا عوض بکنه اینجا نشسته تو زندان تو خونه بسار یکم هوا عوض بکنه این بچه بیاد با ما بازی بکنه شما بردید که او را بازی بدید یا خودتون برید بازی بکنید ادمای بزرگ ریش سفید قوم شما رفتیم مشغول بازی شدید یکی از شما نبود که بیاد کنار برادرش بشینه یا اینجا دروغ گفتید یا اونجا دروغ گفتید اونجا گفتید که یوسف را می‌بریم بازی بکنه اینجا میگید که ما رفتیم بازی بکنیم پس اونجا دروغ گفتید که هدفتون بازی کردن یوسف شما هدفتون این بگه با خودتون بازی بکنید این دروغ دوم در بحثشون رو نکنید میخوان سرنخ رو گم بکنن در صورتی که حرفاشون دلیل و مدرکی برهانی بر علیه خودشون بخاطر همین در شنیدن حرف و سخنان خص قاضی باید دقیق باشه چی داره میگه خب رفتن به جایی که مراقب برادرشون باشن رفتن بازی برادرشون هم کنار گذاشتن برادرشون گذاشتن که معاذب وسائلاشون باشه ذهب نه نستبق رفتیم برای مسابقه قلا یا استوانی یا تیراندازی و ترک نه یوسف یوسف هم رها کر و سؤالمون باشه فاکل له ذئب گورگورو خورد اونجا پدرشون گفت نماز بچید گورگورو نخوره گفتیم حرف تو درشون گذاش اینجا یه دک کشیدمون بله گور خورد تو گفتی که گورونو میخوره گور خوردش خب گور خوردش بالاخره گور وقتی که میخوره که با یک تنه آدمی و انسانی که سیر نمیشه دستشو خورد پاشو خورد سر گردن یه چیزی بود استخونی بود باقی میمونه خب بقیه جسد رو نماز روش میخونیم دفنش بکنیم کجاست گور که نمیبره که نمیتونه که جسد کامل جسد یک انسانی بزرگ همچون یوسف که اون موقع هم تنومند بود یاد با خودش برداره و بکشه و ببره خب جسده کو جسد هم نیست این مدرکی سهم بر علیهشون نه به نفسو و ما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقی تو هم پدر ما رو باور نداری که کی ما رو باور داشی اصلا حرف ما قبول نداری ولو كنا صادقین هر ما صادق هم باشیم ولو كنا صادقی یعنی ما گم راست بگیم یعنی راست نمیگن دیگه هم چهارم خودشون گفتم یعنی دادن سر نخ میدن به اینکه صادق نیستن اگر ما هم صادق باشیم تو باورمون نمی کنی یعنی صادق نیستی. و ما انت به مؤمن لنا ان شاء الله از کلمه ایمان به کار برد نگفت ما انت به مصدق لنا نگفتمره تصدیق نمی کنی تصدیق باور نداری گفت ما انت به مؤمن تو فرق بین ایمان و تصدیق کلمات عربی کنار هم دیگه گذاشته بشه معانیش مشخص میشه ایمان در مسئله غیبیه مثلا ما میگیم ایمان به الله داریم ایمانمون بر یک مسئله غیبی یا ایمان به ملاکه ندیدیم ملاکه ایمان داریم ولی تصدیق در یک امر محسوسیه این خودشان در بحث اختلافات عقیدتی خیلی مؤثره تصدیق در مسائل محسوسه قبل در آسمان من ایمان دارم یا تصدیق لره باور دارم کلمه باور هرچند که معنای اعتقاد میاد معنای ایمان میاد نمیشه گفت که من باور دارم که ابری در آسمانه نه من دیدم اب در آسمانه تصدیق میکنم درسته حرف درسته یه چیزی محسوسیه این تفاوت اصلیه بین کلمه تصدیق و ایمان اینجا الله ناگور در اون قضیه که داره نقل میکنه دقیقه چون یعقوب شاهد نبود بر اون قضیه و ماجره اون موقعی که یوسف رو در چاه انداختن مسئله غیبی بود بنسبت یعقوب ندیده بود یعقوب اون قضیه و ماجرا رو الله از کلمه ایمان بکار به کار برد بنسبت اون قضیه‌ای که دارن برادران یوسف اون ماجرا رو دارن توضیح میدن ای پدر تو ما رو باور نداری بر اون مسئله غیبی بر اون ماجرایی که رخ داده بر اون ماجرایی که رخ داده تو ما رو باور نداری کلمه ای ایمان در شرف فراتر از این معنای لغوی اینجا از باب لغت استفاده شده مثل نماز به معنای دعاست ولی نماز وقتی گفته میشه یعنی اون هیئته خاصی که درش رکوع و سجده و قرائت و تلاوت خاصی است زکات هم طور, حج هم حج نه قاست که ارکان خاصی داره عرفه هست مظرفه و طواف ایمان ایمانم نمیتوره ایمان در شریعت اون ایمانی که الله عزمن خواسته که بهش بیاریم با زبان اقراره با جوارح با دست و پاس با نماز و روزه گرفته و با قلب باور قلبیه خاطر همین امام شافعی رحمه الله میگوید که اون چیزی که صحابه و تابعین و تابع تابعین برش بودن در تعریف ایمان اینه که ایمان قوله و و تصدیق قول گفتار و عمل و تصدیق اون باور قلبی ایمان از این سه تا تشکیل میشه کسی بگه عمل از ایمان نیست الان من ایمان میارم میگم که الله را قبول دارم ولی نماز نمی خونم خیر تو مسلمان نیستی بخاطر همین اتفاق ائمه چهار مذهب بر اینه کسی که اصلا نماز نمی کسی نماز روش نمی حکم مسلمون رو نداره کسی که اصلا نماز نمیخونه اما کسی گاه نماز می عملی داره برای خودش این اختلاف در حکم کفرش بلکه که اصلا تارک و نمازه، نماز نبا دروش شونده بشه این حکم شریعت با کسی هم شوخی نیست در این قضیه کل ها روی این قضیه اتفاق داره چون ایمان فقط مجرد ادعا نیست باید در عمل انسان ثابت بکنه که مؤمنه بس ایمان در شریعت بالاتر از معنای لغویشه باید شخص بر حسب ادعای خودش در عملم ثابت بکنه سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله والحمد لله صلی الله علی محمدین و محمد